برلین، آلمان، 18 ژانویه 1993. لیلی در استودیوی رادیو برلین روبروی مجری نشسته بود. از او دعوت شده بود مهمان یک برنامه باشد و اکنون منتظر شروع آن بود. استرس داشت و از اینکه به آنجا آمده بود پشیمان بود. حتی به این فکر می‌کرد که از آنجا برگردد و گفتگوی رادیویی را نپذیرد. هیلمود اصرار داشت او حتما این کار را انجام دهد. هیلموت معتقد بود چون موضوع ویلولون جهانی شده است او باید درباره آن صحبت کند و به شایعات و حرفاهدیث و هایی که حول آن ایجاد شده است پایان دهد. گوینده اشاره کرد تا چند لحظه دیگر برنامه شروع می شود. هدفون ها... های روی گوشش را جابجا جا کرد. روی صندلی صاف نشست و آماده شد، انگار مقابل دوربین باشد، نگاهی به پیراهن مشکی کوتاهش انداخت و بعد، دستی به موهایش کشید تا مطمئن شود مرتب هستند. شنوندگان عزیز سلام. با یکی دیگه از برنامه های رویدادهای شهر در خدمت شما هستیم. امروز یه مهمان ویژه داریم. داستانش بیشید است اما ما موفق شدیم. رازیش کنیم درباره موضوعی که مطمئنن این روزها از روزنامه ها پیگیرش هستین یعنی ویولون استرادیواری با شما صحبت کنه. یک داستان هیجانانگی است که ما امروز سعی می از جهات مختلف بررسیش کنیم و زوای های رو کشف کنیم خانم لیلی از امروز با ماست لیلی در مدرسه راهبه های آلمانی شهر قاهره تحصیل کرده و زبان آلمانی رو خیلی خوب صحبت میکنه خب گفتگو رو شروع می لیلی حالت چطوره؟ روزهای پر رو اینجا در بیلین میذونیم بزار اول ازت بپرسم، چطور شد که با این قضیه ارتباط پیدا کردی من وقتی می اومدم برلین اصلا نمیدونستم همچین قضیه‌ای وجود داره که به من هم مرتبط میشه من دنبال خانواده‌ام میگشتم و برای همین به اینجا اومدم یه وکیل به من گفت مادرم اصالتاً آلمانیه خب پس از همینجا شروع کنیم تو مصری هستی و در مصر بزرگ شدی درسته بله من مصری هستم و هیچ چیزی در این مورد برام عوض نشده. الان این رو می دونم که مادرم آلمانی بوده و موقعی که در مصر بود من رو به دنیا آورد. در اونجا یک خانواده من رو به فرزند خاندهی قبول کردن. اونها خانواده من هستن و همیشه پدر و مادرم خواهند بود. همونطور که مادر مصری هم وقتی فهمید من همه چیز رو می دونم گفت اونهایی که بزرگت کردن و تو رو تربیت کردن پدر و مادرت هستن. در لحن صداد انگار دلخوری حس می کنم. فکر می کنم یک کمی از دست مادر واقعیت ناراحتی؟ بله، درسته. هر کسی در موقعیت من باشه قطعا ناراحت و غمگین میشه. اما الان شرایطم رو پذیرفتم و اون رو به خاطر تصمیمی که گرفته بخشیدم. اون یه پرونده داشت و به عنوان یک نازی متهم به ارتکاب جرم شده بود و به همین دلیل هم فرار کرد. مدت زیادی به عنوان منشی آیشمن کار می کرد اینطور نیست <تصفيق> اگر واقعا جرمی می مرتکب شده بود تاوان کارهاش رو در زندگیش پس داد اون تمام عمرش رو با ترس و در حال فرار زندگی کرد از ترس تعقیب کنندگانش حتی نمیتونست با اونهایی که دوستشون داره هیچ ارتباطی داشته باشه می ترسید عزیزانش به خاطر اون آسیب ببینن فکر می کنم با فرارش تاوان گناهانش رو پس داد خب، جنایات نازی ها واقعا فجی بود، اینطور فکر نمی کنی؟ قطعا جنایات نازی ها جزوش و بدترین جنایات بشری بوده. اما یه سوال. آیا مادر من واقعا جرم مرتکب شده؟ و اگر بر فرض درست بوده، آیا به این معنی نیست که ما داریم یه سرباز رو به جرم اجرای دستورات فرماندهش متهم می آیا همه سرباز های دنیا که به اونها دستور جنگ داده شد محاکمه میشن؟ آیا يا سربازها توانایی این رو دارن از دستور موفقشون اطاعت نکنن تو داری از منطق اونایی استفاده کنی که میخوان این پرونده ها برای همیشه بسته بشه اون پرونده ها ارتباطی به من نداره من فقط چیزی رو گفتم که الان به ذهنم اومده من درباره چیزهایی که از مادرم میدونم و به من رسیده حرف می‌زنم خب دیگه درباره ها حرف نزنیم برگردیم به بحث اصلی و درباره ی ویولون حرف بزنیم. چطور شد که این ویولون با ارزش به تو رسید؟ این ویولون یه هدیه بود که به خانواده ی مادرم داده شد. همسایه اونها در برلین اون رو به مادرم و خواهرش هیلدا هدیه داد. هدیه داد؟ از این بابت مطمئنی؟ بله، مدارک قانونی هم موجوده و این رو ثابت میکنه. در مغازه فروشی آقای مایر همسایه مادرم این مدارک به خط خود آقای مایر ثبت شده و اون گفته که مالکیت ویورون رو به مادرم و خواهرش انتقال داده و به عنوان هدیه به اونها بخشیده. اما یه نفر دادخواست داده و صحت مدارک رو زیر سوال برده. بله، درسته. یکی از شکارچیان نازی دادخواستی با این مضمون ارائه داده که مالکیت این ساز در زمان حکومت نازی به زور منتقل شده و بنابراین مالکیت ما نوعی اخاذی به ناحق محسوب میشه. الان این پرونده بسته شده. پس یعنی دادگاه به خاطر مدارکی که در اختیار دارین مالکیت شما بر ویلون رو پذیرفته. قبل از اینکه لیلی جواب بدهد، مجری حرفش رو قطع کرد و گفت: اجازه بدین یه فاصله بگیریم و چند پیام بازرگانی بشنویم. بعد برمیگردیم و پاسخ لیلی و ادامه داستان ویلون رو پی میگیریم. با ما همراه باشید. با توقف برنامه لیلی نفس راحتی کشید و کمی آرام شد. با سوالات پیدرپه پی مجری دچار استرس شده بود. قبلا به همراه هیلمود و گریتا سیر احتمالی گفتگو را حد سده و با هم پاسخهای مناسبی آماده کرده بودند. در ذهنش همه آن حرفها را مرور کرد. رشته تخصصیش در اینجا خیلی به کمکش میآمد در دانشگاه آمریکایی قاهره علوم سیاسی خوانده بود و مدتی بعد از فارغ التحصیلی نیز در یکی از مؤسسات زیر نظر های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در قاهره مشغول به کار شده بود احساس می کرد اکنون باید از موضوعاتی که همیشه ذهنش را به خود مشغول کرده بود حرف بزند افکارش را مرتب کرد حرفی که قبلا در ذهنش بود و هیچ وقت تصور نمی کرد روزی روی, روی آنتن زنده بتواند آنها را به زبان بیاورد. حالا آماده بود همه آنها را بگوید. از را جزم کرد. تصمیم گرفت. حتما از مجری بپرسد. چرا دنیا به دست افراد بیعقل اداره می شود؟ چرا ادهی باید قربانی جنون آنها شوند؟ چه کسی خسارتهایی که آنها به بار آوردن جبران می کند؟ باید از ایدی امین، بوکاسا، معمر قذافی صدام پینوشه، پوت و دیکتاتورهای دیگر نام میبرد و به این موضوع اشاره می کرد که دولتها و کشورهای مختلف به راحتی با این حاکمان رابطه سیاسی برقرار می کردن با اینکه میدانستند آنها حکامی خونریز و دیکتاتورند دوباره آرامش خود را به دست آورد <تصفح> با این افکار احساس کرد حالا قویتر است به این فکر کرد که تا اینجا در گفتگو عملکرد خوبی داشت این فکر باعث اعتماد به نفس بیشتر او شد برای بخش دوم برنامه آماده بود خب ما برگشتیم همچنان با لیلی ازدودین صاحب ویولون گران قیمت استرادیواری همراه هستیم خب تعریف کن چطور پرونده مالکیت شما بسته شد علاوه بر مدارکی که خودمون در اختیار داشتیم یه نفر هم به نفع ما شهادت داد و همین باعث شد مالکیت ویولون اثبات بشه منظورت شهادت راشل هست دیگه درسته؟ بله همسایه مادرم در برلین در زمان جنگ ویولون یکی از اشیایی بود که در مغازه پدر ایشون گرو گذاشته بودن و آقای مایر اون رو به خانواده ی مادرم هدیه داد. راشل استاد تاریخ دانشگاه برلین هست. اون خودش هم یکی از قربانیان نازی هاست و چند سال در اردوگاه آشویتز بوده. این عجیب نیست که اون به نفع شما شهادت داده. ما در دور زمانی زندگی می‌کنیم که اگه بشنویم کسی بر اساس حق شهادت داده تعجب می‌کنیم. فکر می‌کنم خانم راشل به اساس اون چیزی که وجدانش بهش گفته شهادت داده. ایشون حقیقت رو میدونست و بر همون اساس هم حرف زد. اما شجاعت ایشون واقعا تحسین برانگیزه. مخصوصاً که از موقعیتش سوء استفاده نکرد. حتما شما قصد دارین به خاطر این ویژگی سخاوتمندانه‌اش بهش هدیه یا پاداشی بدین. من فکر نمی‌کنم کسی که یه کار اخلاقی انجام میده منتظر پاداش باشه. خانم راشل کاری که وجدانش بهش گفت رو انجام داد من خودم زیر دست راهبه های آلمانی تربیت شدم و با خصوصیات فرهنگی مردم آلمان آشنا هستم و میدونم که اونها در چنین موقعیتهایی خیلی به اصول اخلاقی پایبند هستن حداقل میتونید یه مقداری به قربانیان ها هدیه کنید به نظرم هر کسی خودش تصمیم میگیره به چه کسی یا کسانی کمک کنه اینکه دیگران و یا شرایط بخوان براشون؟ براش تینه تکلیف کنن. درسته ولی آیا چون شما اهل مصر هستی نمیخواید چنین کمکی بکنی؟ من یک انسان هستم و به هر کسی بخوام و اعتقاد داشته باشم کمک خواهم کرد. ولی اجازه نمیدم کسی افکار یا شرایط خودش رو به من دیکته کنه. و آیا فکر نمی کنی قربانیان هولوکاست مستحق چنین کمکهایی کمک هایی هستند؟ قطعا همینطوره. به اونها ظلم شده و جنایات فجی در حق اونها مرتکب شدن. بذار من یه سوالی از شما بپرسم. آیا به همه قربانیان هولوکاست قرامت پرداخت شده؟ البته که نه. اما هر کسی که توانایش رو داشته باشه میتونه در این کار مشارکت کنه. سوالم رو دوباره واضح تر میپرسم. آیا هولندی ها و اسلاف ها و کلی های دورگرد که هیتلر اونها رو هم با یهودیا در اتاق‌های گاز کشته بهشون قرامت داده شده؟ آیا دنیا همونطور که به فاجعه یهود گوش میده صدای فریاد دادخواهی این افراد میگناه رو هم میشنوه؟ آیا به سرخبوستان آمریکا قرامت, قرامت داده شده؟ آیا به ارمنی‌هایی که در کشتارگاه های ترک ها قسل آم شدن قرامت داده شده؟ هیتونم ازتون بپرسم آیا ترک ها تا حالا به جنایت هایی که در حق ارمنی ها مرتکب شدن اعتراف کردن؟ من به هیچ فش نمیخوام جنایاتی که در حق یهود شده رو کم یا کوچیک نشون بدم. بله در حکومت رایش سهفون به اونها ظلم شده. اما میخوام بگم قربانی های زیادی با همین شدت و بلکه بیشتر هستن که صداشون مثل بقیه به گوش دنیا نمیرسه یا بهتر بگم اونها رو س یا اگر هم حرفی بزنن، انگار هیچ تأثیری در وجدان بشری نداره. به نکته مهمی اشاره کردی. شاید لازم باشه به قربانیان و مبارزان فلسطینی کمک کنم. کسانی که سرزمینشون رو به زور ازشون گرفتن و آوارهشون کردن و اونها سال هاست برای دفاع از وطنشون می جنگن. این موضوع به بحث ما مربوط نمی لیلی. چرا نمیتونه موضوع صحبت ما باشه؟ مگه ما از رنج و آسیبی که بشر از هم خودش میبینه صحبت نمیکنیم؟ این بس خیلی گسترده است و مدت که در حرف میزنن. بزار برگردیم به موضوع ویولون. نه، خواهش میکنم اجازه بدین صحبتم رو ادامه بدم. پدر من برای دفاع از سرزمینش جنگید و کشته شد. چه کسی به خاطر از دست دادن پدرم به من قرامت میده؟ آیا دنیا کاری برای من انجام داده یا اینکه با مرگ پدرم فقط یک نفر به تعداد قربانیان جهان اضافه شده دنیا برای قربانیان قربانیان صبره و شتیلا و دریاسین چه کار کرده شاید رسانه ها موضوع جالب توجهی دربارش پیدا نکردند یا شاید کسانی هستند که این رسانه ها رو مطابق میل خودشون کنترل میکنند پس شما میخوایم به فلسطینی ها و کسانی که در جنگ با اسرائیل کشته شدن کمک کنیم. خب این فکر خوبیه. اگه بخواییم در تمام دنیا کسانی که مستحق کمک هستند رو حساب کنیم، خیلی کار سختیه. برگردیم به ویولون. به عنوان مالک ویولون الان تصمیم داری چیکار کار کنی؟ من و دختر خالم گریتا شریک هستیم. ما با هم در موردش تصمیم میگیریم. آیا قبلا اون رو برای فروش گذاشتین؟ بله و احتمالاً دوباره در یک مزایده جدید به نمایش خواهیم گذاشت. آیا با گریتا توافق کردی پولی که از فروشش به دست میارین رو چطور خرج کنین؟ این رو به این دلیل میپرسم که اون آلمانیه. به نظر میاد شما اصرار داری که فکر خودت رو به ما تحمیل کنی در حالی که این حق ماست که تصمیم بگیریم چه کار کنیم. گریتا تصمیم خودش رو گرفته. سمنان اون خودش هم یکی از قربانیان جنایت علیه بشریته. می دونم که اون یه قهرمان ورزشی در آلمان شرقی بود آیا اینا میدونی که اونا برای به دست آوردن قهرمانی چه بلایی سرش آوردن میدونی به خاطر همینه که الان تو اثر مرگه کی مسئول این جنایته کی تاوان رنج هایی که اون کشیده رو پس میده که ما و مبهوت مانده بود هیچ پاسخی نداد در طول تاریخ این همه حاکمان به مردمشون ظلم کردن. چه کسی پاسخوی این جنون و جنایت عظیم اون هاست؟ من به شما میگم، هیچکس. هیچکس هیچ, کس. هیچ کس نیست. برای ما در کتاب های تاریخ از داستان جنایت های نرون، هنری ششم، کاریگولا، ایوان مخوف و دیگران نوشتن و نوشتن تا رسیدن به دوران هیتلر، <تص> خب برای قربانیان این جنایات چه کردند؟ هیچ. بدتر اینکه اسم اونها با همین جنایات در تاریخ جاودانه شد و ما بدون اینکه از این موضوع درس بگیریم به چون حاکمانی اجازه میدیم دوباره قدرت رو به دست بگیرند و ما رو به سمت پرتگاه های نابودی حل بدهند. بشریت همیشه از درس گرفتن از تاریخ روی گردان بوده. یه سوال جالب به ذهنم اومده لیلی؟ حالا که از اصل و نصب خودت مطلع شدی، نمیخوای ملیت آلمانی بگیری؟ مصر وطن واقعی من هست. من اونجا بزرگ شدم. فکر نمی کنم الان زمان مناسبی برای این کار باشه. چون این اتفاقاتی که در این کشور افتاده مثل یه زلزله زندگی من رو زیرو رو کرده و من نمیتونم به این کشور علاقه من بشم. حرفات یکمی تل خلیلی. قبل از این که خداحافظی کنیم، میخوام آخرین سوالم رو ازت بپرسم. تو و گریتا هیچ به این فکر کردین که این ویولون رو به عنوان یک میراث بشری به یه موزه اهدا کنین تا افراد زیادی بتونن از دیدنش لذت ببرن؟ لیلی لحظه ای فکر کرد. سپس بارنامی پاسخ داد. شاید بهتر باشه این رو به برنده مزایده پیشنهاد بدیم.